ظلم بیش دوانده است، در مرسای ما حلول کرده است، ما را بنده تیش ساخته و حال مینوازد تا برخصیم. مزد شدگان به آوای او در آمدند، حال میگویم از آنچه ریشه است، خدا است، عامل جنون است. مقاله ریشه، کتاب کیلیا، اثر نیما شه برای دسترسی به آثار صوتی نیما شه می میتوانید، از وبسایت جهان آرمانی، کانال تلگرام، کانال یوتیوب، اپل پادکست، اسپاتیفای و دیگر برنامه های پادکست استفاده کنید.